یادت هست گفتی جمعه به رستوران می رویم بله. الان یادم آمد. فراموش کرده بودم. فردا جمعه برای نهار به رستوران می رویم خوب است. به کدام رستوران می رویم؟ به رستوران رفتاری. غذاهای این رستوران خیلی لذیذ است. مخصوصا خورش فسنجان. خورش فسنجان چیست؟ من تا به حال این خورش را نخوردم خورش فسنجان را با گردو، گوشت و رو به انار میپزند و آن را با پلو میخورند فسنجان رو به انار دارد؟ پس ترش هست نه، خیلی ترش نیست چون مقداری شکر در آن میریزند شیرین است من قبلا های ایرانی خوردهام معمولا کمی ترشند بله اما فسنجان شیرین است مطمئنم خوشت میآید امتحان میکنم ایرانیها فسنجان را دوست دارند و در بیشتر مهمانیها خورش فسنجان هم روی میزه غذاست